گویند مگو سعدی چندین سخن از عشق می گویم و بعد از من گویند به دورانها شهر تخران خفقان گرفته بود هیچکس نفسش در نمی آمد همه از هم می ترسیدند ها از کسانشان میترسیدند ترسیدند بچه ها از معلمینشان معلمین از فراشا و فراشا از سلمانی و دلاک، همه از خودشان میترسیدند از سایهشان باک داشتند همه جا، در خانه در اداره در مسجد پشت ترازو در مدرسه و در دانشگاه و در حمام مأمورین آگاهی را در پی خودشان میدانستند در سینما موقع نباختن سرود شاهنشاهی همه به بر خودشان مینگریستند مبادا دیوانی یا از جان گذشتهای زد و موجب گرفتاری و در سر همه را فراهم کنند سکوت مرگ آسایی در سرتاسر سر کشور فرما بود همه خود را راضی قلم داد می‌کردند روزنامه‌ها جز متن دیکتاتور چیزی برای نوشتن نداشتند مردم تشنه خبر بودند و پنهانی های شاختار پخش می‌کردند کی جرأت داشت علنا بگوید که فلان چیز بد است مگر ممکن میشد که در کشور شاهنشاهی چیزی بد باشد اندوه و بیحالی و بدگمانی و یأس مردم در بازار خیابان هم به چشم می‌خورد مردم واهمه داشتند از اینکه در ها دور و را نگاه کنند موادا مورد سوء زن قرار گیرند خیابان‌های شهر تهران را آفتاب سوزان غیر قابل تحمل کرده بود معلوم نیست کی به شهرداری گفته بود که خیابانهای های فرنگ درخ ندارد. تیشو به دست گرفته و درخ های کهن را میانداختند. کوچه های تنگ را خراب می کردند. بنیان محله ها را میانداختند مردم را بی خمان میکردند و سالها طول می کشید تا در این بر برهود خانه ساخته بشود. آنچه هم ساخته میشد تو سری خورده و بی قواره بود. در سرتاسر سر کشور زندان میساختند و باز هم کفاف زندانیان را نمیداد از شرق و غرب از شمال و جنوب پیرمرد و پسر بچه ده ساله آخوند و رعیت بقال و حمامی و آب هزکش را به جرم اینکه خوابنما شده بودند و در خواب سقوط رژیم دیکتاتوری را آرزو کرده بودند به زندانها انداختند هم شاگرد مدرسه میگرفتند هم وزیر و وکیل یکی را به اتهام اینکه در سلوانی از کاریکاتور روزنامه ای در فرانسه درباره شاه گفتگو کرده بود میگرفتند یکی را به اتهام اینکه در ضمن مسافرت فرنگستان با نمایندگان یک دولت خارجی سر و سری سر داشته و دیگری را به اتهام اینکه سهام نفت جنوب را پنهانی از دولت به داران انگلیسی فروخته است در چین اوزای در سال 1317 استاد ماکان درگذشت اصلاد بزرگترین نقاش ایران در صد سال اخیر بود پس از چند قرن باز آثار یک مرد نقاش ایرانی در اروپا مشتری پیدا کرده بود و مجلات هنری اروپا آمریکا پرده های او را به چاب میرسندند از کسانی که روزی ورود او را در مدرسه و در مجالس با هل هل استقبال میکردند اده کمی جرأت داشتند که با او ابراز دل کنند در پنهان اشخاصی وجود داشتند که میدانستند استاد مکان یکی از اندک کسانی بود که جرأت و دلیلی به خرج داد و با دستگاه دیکتاتوری دست و پنجه نرم کرد. درباره او داستانها نقل میکردند. میگفتند: از هیچ محرومیتی نعرصید، به هیچ چیز دلبستگی نداشت، جز به نقاشی به هیچ چیز پایبند نبود. فشار دستگاه پلیس دیکتاتوری کمر او را خم نکرد. تهدید در وجود او کارگر نبود به او را قطع کردند بی اتنای به داد از سهران تبعیدش کردند سرحرف خود ایستاد و در غربت دور از کسان و در دور از دوستان درگذشت عوام میگفتند که عشق زنی او را از پا در آورد فهمیده ها معتقد بودند که عشق به زندگی او را تا پای مرگ روزی که خبر مرگ او در تهران منتشر شد، دوستان و نزدیکانش بیخ گوشی با هم صحبت می کردند. می یکی دیگر هم به سکته قلبی درگذشت. چون روزنامه ها معمولا قربانی های حکومت را که در زندان و تبعید جان می دادند، مبتلایان به چنین بیماری قلم داد می کردند. شاید به تحریک یکی از دوستانش که در دستگاه دولتی نفوذ داشت، شاید هم به ابتکار خود، حکومت که از نفوظ معنوی استاد در میان مردم فهمیده, فهمیده با خبر بود به قصد سرپوشی جنایتی که رخ داده بود از او تجلیل کردند و گفتند حال که یکی از دشمنان سرسخت استبداد نابود شده خوب از از مرگش حداکثر استفاده بشود مبادا پس از سرسده که یک رئیس شهربانی فراری در دنیا راه انداخته بود جهانیان یقین حاصل کنند که استاد را در ایران کشتند در هر حال در مسجد سپهسالار سالار ختم دولتی گذاشتند. جنازه را با تشریفات شایستهی به تهران آوردند و در حضرت عبدالعظیم به خاک سپردند. در دبیرستان امریکمیر سخنانی برپا کردند و در تالار دانشسرای مقدماتی آثار او را به نمایش گذاشتند و به این بسیله دولت خاص هنرپروری خود را نشان بدهد. اما مردم فریب نمی آنها ساختمان باشکوه دانشگاه را هم چون به دستور دیکتاتور انجام گرفته بود به زیان استقلال کشور و به سود انگلیس ها می دانستند. چه برسد به اینکه مرگ استاد نقاش را آن هم در غربت و مراسم سوگواری او را با چنین تشریفات و تجدیلات ساختگی عادی و طبیعی قلم داد کنند. آنهایی که در تهران خ... در تهران خفرقان گرفته آن روز سهدمدان رو دارای کیابیا بودند وکیلان و وزیران و سرتیپ و سلشگر و کوچی ها روز افتتاح نمایشگاه آمدند و دیدند و بهبه گفتند و رفتند نمایشگاه خراب بود یک ماه دایر باشد روزهای اول فقط شاگردان و دوستان و هواخواهانش به تماشا می رفتند و مدتی جلوی پرده های او به خصوص در برابر آخرین پرده نقاشی او که از کلات به تهران آورده بودند ایستادند و به عظمت هنر و قدرت تجسم و نیروی بیان عواطف انسانی به وسیله رنگ و خط سر احترام ورود میآوردند بعد از اوها وزارت فرهنگ برای حفظ آبرو و حیثیت زمامداران شاگردان مدرسه را دست دسته به دانجا میفرستاد اما از هفته دوم تماشای آثار استاد جنبه عمومی و ملی به خود گرفت گروه گروه مردم میرففتند تا خودشان را باز یابند در پرده های خوش رنگ و با صلابت او تصویر خودشان را می و به خصوص در برابر پرده نقاشی که زیر آن به خط خود استاد چشمهایش نوشته شده بود میزدند و خیره خیرهبان مینگریستند با, می با هم جو بحث می و میکوشیدند راز چشمهایی را که همه چیز می و در عین حال آرام به همه نگاه میکرد دریابند مردم از خود می‌پرسیدند که این چشمها چه سری را پنهان می چه چیزی را جلوه گرم می سازند و هر کس هرچه فهمیده بود می‌گفت، اما نظرها متفاوت بود و به همین جهت جر و بحث در می‌گرفت.